ابوزر را تبعید, تبعید کردن رفته در شام بر و برهنه سوار کردن پیره مدواناش زخم شده چه گوشتای بدنش آویزان شده چه و چه توی اتاقی تنها تبعیدی زندانیش کردن از علی و آل علی و مدینه جدا شده بر ابوزر چه میگذره؟ نیمه های شب در خونش رو در میزنن ابوزر اومد در اقواه کرد دید پیکی از طرف معاویه است معاویه با امرعاست کرده. اما همراه همراه چرا کونمی عابوزت خیلی ها رو خسته کرده گفت پول خیلی ها رو عوض کرده خیلی یه مقدار پول براش بفرست عملگیر بشه توول درواسی گیر کنه بعد ممکنه که بتونی کاری که میخوای انجام بدی. آ یه مقدار پول معوی فرستاده ابوذر گفت الا بهیتول ما رو تقسیم کردن سهمیه ی قنییمتی گیر اومده سهم منه نه گفت برگردون. من ای مال هم من هم میگیرم. اگه فقط گفت فقط... نه برای شما خواسته محبت کنه اینجا تو بلاد غربت تنها، گفت میخوام برگردم. این حق سکوت ما نمیگیم. امرا و معاویه منتظر نشسته اند. غلام برگشت چی گفتن همچین امرا راه دیگری پیش گرفت. گفت ابوذر به آزادی بردگان و نجات های محروم حساسیت نشون میده. این بار به این عنوان فرستادن اومد گفت ابوذر معاویه گفته اگر شما این پول رو از من قبول بکنید، مرا آزاد می‌کند. به خاطر اینکه منو آزاد کنه این پول پولو قبول کن. ابوذر گفت یا راست میگی یا دروغ. اگر دروغ میگی که جزات همونی است که دروغ گفتی ببینی. اگرم راست میگی با قبول این پول دو آزاد میشی ولی من برده میشم. من نمیخوام با بردگی خودم تو رو آزاد کنم. میخوام با آزادی خودم تو رو آزاد کنم. گفتن ذل سلطان در اصفهان حکومت میکرد و ستمها می داشت. روزی سوار بر مرکب هیش غربولانشون داز میزدن راه رو باز کنید زلی و سلطان بشه یک آبد آزادهی کنار خیابون تو آفتاب لنداده داده بود و خابیده بود آفتاب گرفته بود همینجوری که خابیده بود چشماش رو کرد گفت چه خبره بیاد رد شه. راه باز ما کاری به اون زل و سلطان از این حاضر جوابی او هم خوشش اومد هم ناراحت شد کالسکا رو دستور داد نگه داری. سر از کالسکه در آورد به این بنده خدا گفت چرا پاهاتو دراز کردی لام دادی گفت قربان برای این که دستامو جمع کرده من دست دراز نکردم که بخوام پامو جمع کنم گفت پول بش بدین کیسه ای پول آوردن گفت نمیخوام گفت چرا گفت دستم دراز میشه بعد با پامو کنم من میخوام پام دراز باشه آزادگی انسان در دنیا در صورتی است که بالاتر از دنیا را شناخته باشد وقتی شناخت پایین تر و پدای بالاتر می‌کنه. پس پر رو برای بالاتر از دست می‌ده. آنانی که ماوراء دنیا ندیدند، نشناخته‌اند، نفهمیدند معنای نگاه رب، معنای رزوان من الله اکبر، زالکه هو الفوز العظیم، معنای فتح خلیفی عبادی یعنی وقتی که در عالم دیگر پای درس علی و آل علی تو بهش بنشیند اینا براش مطرح نباشه. چرا دل به مدل اتومبیل خوش نکنه؟ چرا دل به میزش, میزش خوش نکنه چرا دل به هی بالا رفتن رقمو پسندازه بانکش خوش نکنه او باید دل به او خوش کنه اما ابوذر اونجا رو دیده حالا این ابوذر رو از شامم برگردوندن دوباره مدینه معاویه گفت من حریف ابوذر نیستم عثمان گفت چه کنم تبعیدش کردن در روزه که در روز ابوذر از دنیا رو گفت هیچ که حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه علی امام حسن امام حسین تنید چند از یاران نزدیک حضرت امیر علیه هم السلام فرمودن باید عبوزر رو بدرقه کنی اومدن تا دروازه مدینه عبوزر رو بدرقه کنن اینجا امام حسین یه صحبتی با عبوزر داره براتون میخونم صحنه رو مجسم کنید صحنه رو مجسم کنید یک پیر مرد الهی نورامی خدایی پاکش مثل عبوزر علی میدونه عبوزر داره میره دیگه میدونه. وقتی داره میره دیگه اینا رو نمیبینه داره خداحافظی شو با اینها میکنه تو شهر پیغمبر مدینه دنیا دوستان کار جارسونده به کجا رو از مدینه بیرون کنن کسی هم حق بدلقه نداره ولی مگه جلوه علی و علی رو میتونن بگیرن لذا امام حسین حدود سی سی و خورده سالشونه مثلا الان موقع تبعید فرمود یا اما و عبوزر میگفتن عمو ج یا اما عموجان، عمو ان الله قادر على اي ما قد ترى خدا قادره هي چیزایی که تو میبینی اینا رو تغییر بده عوض کنی یعنی نه اینکه نعوذ بالله خدا دیگه دستش بسته شد يد الله خدا خدای گوشه نشسته اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن نه امتحانه خدا که میتونه عمرو زیر و رو گنه. وقتی خدا ناظره شاهده تو این بوته ای امتحان دارن افراد خودشونه نشون میدن و الله کل یوم فیشن خدا هر آن در یک شعنیست بخواد عوض کنه تکون بده اینو ببره اون بیاره نادر مردیز عرب حوشمن گفت عبد از روی زیر همین قبب و این بارگاه روی همین مسند و این تکیه گاه بودم و دیدم بر ابن زیاد آق چه دیدم که تو چشمم مباد تازه سری چون سفهر آسمان تلعت خرشید زرویش نهان بعد از چندی سر اون خیر سر بد بر مختار بروی سفر بعد که مسعب سر و سردار شد دست خوش او سر مختار شد این سر مسعب به کار تا چی کند با تو دگر روزگار خدا بخواد تحول و دگرگونی ایجاد بکنه اینا که چیزی نیست خدا میبینه خدا شاهده ما کارمونو باید در این عالم انجام بدیم وقت اینجا رو دقت بفرمایید اول این رو فرمون خدا میبینه خدا شاهده خدا میتونه تکون بده همه امور دست خدا ما وظیفه داریم بندگی خودمون انجام بدیم وقت منعکل غومو دنیا هم و منع تهم دین عجیبه امو جان این مردم باز داشتن از تو دنیاشون دنیاشون دنیای این مردم تو رو من کرده باز داشته یعنی این مردم چیکار کردن؟ میگن نمیذاریم تو مدینه بمونید نمیذاریم پیش علی باشید نمیذاریم تو مسجد پیغمبر بیایید تو رو میکنیم باید برید چرا؟ شون دنیا, دنیا براشون متره به خاطر دنیاشون میبینن دنیاشون. دنیاشون در خطره و منع صحوم دینه اما تو اونا رو باز داشتی تو چکار کردی سرزنش کردی نهی منکر کردی اعتراض کردی اونا رو از این کارا باز داشتی چرا دینتو تو برای دینت کار کردی اونا برای دنیاشون کار کرده تفکر دین و دنیا رو اینجا مشخص بفرمایید مردمی که ابو زرات حبیعید می کنن به نام خلیفه پیغمبر جانشین پیغمبر امت پیغمبر پیروان پیغمبر یار صدیق پیغمبر رو از شهر پیغمبر بیرون می کنن. یعنی عامل حرکت ببینید عمل حرکت تلاش فیل یا خیاریست یا جبری اگر فعل اختیاری باشد جبری نه انگیزه فعل مطرح هست یا نه پشتوانه این عمل مطرح است یا نه چه می شود با چه انگیزه من این حق میزنم اون حق نمیزنم آیا انسان ذاتن بر مبنای قانون خلقت طلب و ضررگریز هست یا نه انسان نفطلبه در درونش نفعی را در نظر می گیرد برای رسیدن به نفعش عمل میکند نفعی که اون مردم خواستند به او برسن ابوذر رو بیرون کنن نفع دنیوی است نفعی که ابوذر در نظر گرفته میخواد به او برسه حاضر از مدینه بیرونش کنن نفع دینی است میگه دین چه میخواد